الله را بدر الله علیه و سیده رسول الله و الله را فی رحمتیان و رحم رحمت رحیم در موقع آخری بود که مدنماتی اقل در مقام تخاطب و توضیح ها که عرض شد و استدلال مرحوم محق ارادی هم بیان شد ایش هم این بود که باید ببینیم در اصطلاح در مقام بیان بودن و اراده اطلاح کردن آیا نکسش که نحضر غرز مغلاس اگر در وقام باید نقشه و مقیده باید نکنه آقای این نحضر غرز اون حدیث که مغلا فقط تبعیم بکنه یا آقای این تبعیم رو هم به مخاطب تبعیم بکنه چون قبول کردن مردار مسلم نحضر غرز همون مردار اوله تبعیم میخواست در مغلا میتونه بود از مستیقن حساب در لذا به نظر این, این مانه نقال اطلاق هست موضوع به نقال اطلاق از که این معنی خودتن موضوع معنی قابل قبول نبود وقت نبود نیست بحث ظهورات کلامی یعنی باید کلام قانونی ماده قانونی دائما باید ظهور داشته باشید بدون ظهور جیت نداره ندارد وقت نبود غلط یک عنوان در اینجا کارایی ندارد باید بیش از مسئله نظر دارد باشه و با اونه نقاد ظهور و اگر رو به دنبال واقعیت ها باشیم در زبان و در مجموعه اطلاعاتی که در روایات وارد شده یا در کتاب کریم انصاف قصدی یک نواردش فهم میکنه در بعض ها قدمت یقین انصافن اجمال افتزایی جمال میکنه روشن بیست و در بعض جه ها قدمت یقین تمرارم تخاطب از قبیل شب که با تعمالی داره میشه خود مرمونه محضره اراقی هم تو آخر بس نوشتن بین که یعنی آمده در تقراتیشان که به در موارد فقیق باید حساب بکنه یعنی خود ایشان با عنوان یک اصولی و فقیق میدونم که با این مشکل رو, رو هستن انصاب رضیه برای اقعاد اطلاع و عدم اطلاع از موتی از مواردش در فرق خرم موارد وقت نیست و انصافا موارد موارد متعددیست البته یک چیز هست که باز مرمو آرزی این ارتفاع پیدا نکردن تبایی همون تصوری که ما شرارن ارز کردیم این بحث ها خیلی هاش از قضیه خارجی داره. نه از از یه حیقی و کبریات و, و مسائل تجریبی و انتظایی بکنم نه این قضیه خارج داریم در خصوص فقه شیعه این طوره اگر قرد متحقنی در روایت باشه در مقامت ها تو, تو روایت باشه چون ما در فقه شیعه مثلا حل المرنا معتقدیم که در مرحله انتقال از نصوص به خطابات، خیلی این نکاح در فتاها طبیعی می شده این رو سنگه ها ندارن احل سنت این قسمت رو ندارن اهل سنت فتاوا رو شارح نصوص نمیدونن همین بابی رو ندارن این باب رو ما داریم که به اصطلاح فتاروهای قدم های ازها نظر به روایات و زرافت در عبارت ها وجود داره که اون نقاط روایات رو روشن میکنه، کنه یک مقداری از این شبه ها به خاطر واقع فرق یا واقعیت تا مسال اخلاقی، اصولی اصول افاق میشه با به برداشت های قدم های هندش کرد این نیست که به دست بسته ببینیم لیکن خب اینا تمام موردی زباد یکی یکی موارد خودش بشه پس بنابراین این, این مطلب که قدرم که در من تخاطب که به هنده این سراف نرسیده آیا موضوع به اصحاب هرسیانه اصحابش مواردش فرق میکنه تعبیراتش فهم میکنه در بعضی از موارد موزرخ هست و در بعضی موارد هم موزرخ نیست بلکه که به درجه انتراب دارد بحث نیست اشکال نیست کمان اینکه هتفا هم مواردی مشکوکه که میگه به درجه انتراب رسیده که میگه نرسیده طبیعتا این هست و هر حال به نظر ما تا به حد نرسه نمیشه رو مسئله مسئلهی به اصطلاب آمان همونکت شرعی و, و این راجع به سه مقدمه این که در... میشه با تقریبا مشهور قائل هم پس شد که امودش همون مقام بیان بودنه و مراد از مقام بیان هم اصل کبراش خیلی مشکل نداره اون که بیشتر محلت نظر بین علمای اسلام و فقهای اسلام قرار گرفته اینه که مثلا آیا آیات کتابی رو میشه به اطلاقش هم از بحث کبروی کمتر هست. اونی که هست بیشتر بحث سهردیست روی آیات مبارکی. بله، به بحث کبروی این بحث هست آیا؟ این دلیل حالت از این روایت به این دهاز اطلاق داری در مقام بیان از این ریزی یک جهت هست یا این بله این مورد داده. این در روایات ما و روایات آمنه مورد داره. آیا به این جه به این لحاظ اطلاق دارد یا ناظر است این مقام در مقام بیان, بیان از این حیثیت؟ حتی مثلا اگر می ادغام تغییر امر نسبیه ممکن به یک جهت اصلاح نشده باشه یا یک جهت داشته این یعنی آیا در مقام بیان از این حیثیت هم هست که تمثیل استفاده شود یا دلوقت دلوقت از این حیثیت فقط در مقام اجمالیات اجماله که تفسیر حساب شود؟ این هست. این مطلب مسافر ثابت روشنه اما خود مسئله در مقام بیان بوده حساسا این در فقه اسلامی خیلی کاربرد نداره به خاطر اینکه در فقه اسلامی مساظر تشریق واضحه یعنی برد همیشه در جهتی در مقام بیان بله جهتی چرا آیا از این جهت مثلا حدیث رسول الله آیا از این جهت اصلاح در ناظر به این جهت اصلاح این میشه مطلب و اما اصل بیان بخواییم بحث بکنیم فایده نداره شون بحث معینه در شریعت ما یکی کتابی یکی سنن بحث معینه، یکی وقتای کبرویش تأثیری نداره بله چیزی که در اینجا هست همین نقطهی که هست یعنیم بحث جهتی و اصحاب هم یه فایده بودشتان که اصل اولی در مقام بیان باشه این هم روچند نیست این اصل با عنوان فایده کلی که ما شکل کنیم و به نظر ما باید موارد دقیقا تحلیل بشه تغییر بشه ما قبلش ما بعدش زمانش خصوصیاتش البته همون که از در خصوص فره شیعه به خاطر وجود اهل بید علیه مسلام از طرف، و بعد فوقهای اولیه ما که سعیشون بود عین فتاها عین این نصوص باشه از جرد دیگه سعی شده خیلی این جهات روشن بشه اهل سنت به این جناسه از ما اغلبه چون ها مستقیم باره رسول الله ارتباط دارند با اینمه شون به عنوان یک فقیق برکرد میکنند پس اون حتی ابو یوسف که شاگرد ابو حنیفه است با استادش یک میفقیم خودش هم فقیق بنام فقیق این که یک قداستی برای او قائل باشه قائل نبوده فقه های احل سنت احناف هم یک مقدار آراه خودمهاش رو نمیم میکنن اما قداست خاصی که حتماد مثلا اینا فهمشون در روایت در صدور در اوجیت تاثیر داشته باشه خیلی تاثیر چندانی نداره به این راجع به مقدمات هشمن و به طور طبیهی خلاصه بحث ما از هر این اطلاف گایی به لحاظ مقدول تصوری که ظاهرا در خیلی از جه ها مراد احل سنت از اطلاف همینه مثل جنیب ما اینه که ما قط شده برای ماهیت حقیقت ما هیچ خصص در شای انفیجننس شیو داشته باشه سریان داشته باشه این هر توش می طبیعت ما, ما به ما, ما این اطلاع به مدول تصوری به نظر ما مقدمات حکمت م میخواه نیاز این مقدمات هم ح ما غیم که عدم اون غا و اهل خو از این فهمیدن مطلب که شیو داره مابلا این شیو نداره در این جمعید مثل همه ازیما ما میگه رای شیوع هم لحظه ما دلالت بر خود ماهیت این عنوان میکنه هر جایی که سدو بکنه جنبه ماه دلالت بر ماهیت آب میکنه هر جایی که عنوانه آب سر بکنه شیوع و سریان یا بدلی بودن این چیزی دیگر از این از خود موجود تصوری یا آب در میاد این یک رسمت بحث به نظر ما در این قسمت میازید مقدمات حکمت نیست اون قسمت دومه بحث اون مدلول است با اون بیان این که حکم این طوره با عنوان یک ماده قانونی و با عنوان یک ماده قانونی که ضرق قاعده شده در رفع شک که بعد از تخصیص هم این حکم روشون در آن گذاشتیم دیگه در اینجا بحث نمی کنیم که اگر تقییدم خوب بعد هم هنوز ماده قانونی از خوب به فکر کنید یعنی اگر گفت جعنی به ما بعد دو مرطبه گفت بسی جان جعنی به ما این, این هار تقیید زد دعاوه ها این تقیید میخوره و حتی اگر مقیدش به لسان نرفی باشه لا تا جعنی به ما این بارد مثلا این است که در آن گذاشت تنوان هم ایجاد میکنه وقتی گفت جعنی به ماهن بعد بخلاس جعنی به ماهن بارد یعنی جعنی به ماهن غیر بارد این بحث تو آم هم گذشت که آیا تخصیص موجب تنوان آم میشه یا نمیشه به نقیض عنوان خاص مثلا اکمل علماء لا و خوف و ساغل علماء وقتی میتونیشه اکلم علماء غیر الفصان این بحث گذشت تو, تو آم شبیه این بحث تو آم تو مختلف میاد فرم نمی اینجا هم همین بحث در اینه مسئله همشای که اونجا به تعنون شدیم اینجا هم وارد میشین در بحث عام اگه یاد اون واردتون باشه؟ مرحوم آوازی ارمینایی یک مرحوم معحق احسانی معتقد شدن که تعنون نمیشه پیدا نمیکنه اگر گفت عقل العلماء الا معناش نیست عقل العلماء غیر الفساد ایشون عقیدشون این بزرگو و توضیحش هم گذشت اینا معتقدن که تحصیل به منزله موت عده عز و همچنین که موت موجب تهنگول نیست، تحصیل هم موجب نیست. این خلاصه استدلالش بود. اگر گفت اکرم العلماء و 20 بوده، 5 تاشون مردن تا وقتی مورد اکرام بکنه. خب هم 15 تا رها. این 15 تا عنوان نداره اون 5 سال مردن، سالم از موضوع شدن. درسته نیست اکرم العلماء غیر از الله موت تعمور نمیاره. تخصیص هم تعمور نمی داره. اکثر علما الا القصا تعمور نمی کنه. بحثش گذشت بحث اسس حساب عدم ازلی راه اونجا المتاع کردن و عرض شد که صحیحش اش نمونده که علی المعطوب النائینی رحمه الله که تخصیص تعمور میاره و تعمورم تعیله به عنوان ادنی است. ابو القصا در اینجا مخالف یعنی اگر گفت مثلا المرئه تو عن الا 50 سنه الا ان تكون امراه من قريش ما اینطوره المرئه غیر قریشیه ترذ عن الا استاد این قسمتش هم واظ ماخره یک تخصیص موجب تانوان دو این تانوان مثل امر وجودی قیده ولو عدم عدم قید نمیشه بلکه تو وعایت بارات قانونی میشه اگه در واقع آدم که آدم دیگه میشه بشه. این تصوریم که ادعیکر رو عدم حداقل میشه اما در اینجا میشه در رعایت موارد قانونی میتونه آدم رو لحاظ بکنه. یعنی اون عنوان غیر قریشی باز براش سرق بکنه عنوان غیر قریشی. نه همین که قریشی نبود، اون کافی نیست. باز سرق بکنه عنوان غیر قریشی. نه همین که ندانی ما قریشی. هم کافی نیست. این بحثی که گذشت در بحث استسخاب هرده مفصلش گذشت اینجا هم دیگه نیازی به تکرار نداره پس بنابراین بحثی که ما الان در اطلاق داریم، این مبارس قانونی اطلاقه خلاصه ای این مبارس قانونی اطلاق در در قوانی به طور طبیعی باید تو مقام بیان باشه به طور طبیعی که در قوانی فرق گذاشتن الان بین قانون اساسی و میشه بحث این که آیا در اسلام هم فرغ میکنه یا فرق نمیکنه اون چی که از اهل سنت فهمیده میشه فرقی بین احلاقات کتاب و احلاقات سنت نمیذارن لكن انصافا میشه فرق گذاشت احلاقات کتاب رو بگیم فقط در همون موضوع خودش که قطعاً مطمئناش هست بقیه شوشن نیست اون مقدار مسلم که مثلا وی هست اما این که این اطلاق شامل همه موارد بشه موارد مشکوک که مثلا فرسای درش فارسی هست یا عربی ناظر بشه قرآن به این اطلاق این یک مقداری انصافش ابهام داره چون چین خیلی روشن رو نیست البته در بین علمای ما به علمای اخبارین این داده شده که حجیت زواهر کتاب رو قبول نکردن زواهر کتاب پیش اینها حجت نیست نه زباهر که حجت به بحثی هست که یا اینا ظهور قانونی داره، ظهور در ماده قانونی داره یا ظهور در قانون اساسی داره این اشکالی که پیش نیاد اینه پس این مقدمات حکمت در مدلول تصدیقی اطلاع محل کلام اگر در اونجا هم در بعضی از جاها مقدمات حکمت نمیخواد ارز کردی گاهی اطلاع مجرد عدم تقیده مثل اینکه آیا این وجوب جعنی به ماه این وجوب تقییمی یا تخییری میتونه آب بیاره میتونه فرصمی مثلا نوشابه بیاره مخیر باشه در اینجا از کدی مقدماتی حکمت نمید همین که گفت جعنی به ما این وجود تقییمی هر وجوبی که بیاد هر حکمی بیاد اثر به اونشه میشه تقییم کارایش نسته همونجایی که مقدماتی حکمت میخواسته نه بار همین لذا بره همه اینها که اطلاق دائما متوقف است برمه مقدماتی اطلاق این هم خیلی روشن نیست. در اطلاق تصوری که احتیاج نداره در اطلاق تصدیقی هم که اینها آوردن در بعضی از موارد همون عدم تقیید کافیه. همین که قید نیاده. ما تو مقام بیان باشی یا ما تو مقام بیان نباشه. همین که جعنی به ما این ما علاوش وجوب تعینی می بگیم در مقام بیان از این حیثیت نبود، بود یا نبود، ما کاری بود ندیش. همین که جهنی به ما هر تکلیفی آمد بدون هر به او میشه واجوب ثینی. باید ما نمیدونیم فقط احکام فقط نظرش به تشریع، هر چی بوده همین که جهنی به ما این ما وجودو تعیین می‌فرمه. نباید مقام بیان از این حیثیت باشه که وجود تعیینی یا تخیری اگر تاخیری میوورد باز احراز بکنید تو مقام بیانه و اگر او نه اگر او باورد تاخیری به الا تعیین ما نمیخواد احراز بکنی احراز نمیخواد همین که گفت یعنی به از این رو تعیین کنه میگه تو مقام بیان از این حیث هست ممکنه باشه ممکنه نباشه حال نه تو ما همین که گفت یعنی اون مردار ظهوراتی که حجت هست در اورف همین میذاره چون ما منشأمون کاش مراد جدی متکلل نیست منشه اون حجیه و ظهورات اورفیس همین که در او ظهور داره همین حجیه نی به ما او رازش واجب این اورف ازش میگم واجبه تعینی جستجو اگر کیو سسو مراد ها مقدار متعارفی است که وصول بده میخواد میگه صح به حال لازمه یعنی گنگو یعنی به ما سوال میگه چی دیگه اسمو میگن نه چیزی دیگه اسم فالو جی نمیواد میگه چه خبره وجوده از بچش سوال میکنه از زن سوال میکنه خیلی سوالات هم کاری سال سوال این آقا وقتی گفت جی فلان یاتیمی به ما این وقتی این حرفو گفت چی دیگه گفت میگه یعنی نه چیزی که نذو مش وجود تنی دیگه نیمیخواد احراز میکنه متکلم تو مهام چرا؟ ما شون دنبال کشت و مراد جدیه نیستیم نقطه مهینه ما دنبال با ظهورات در مقیاس و هستیم در مقیاس و اقلالی جنب ما هم هر تکیفی که او سوش نواجیم اون شو تعیید. واجب تعییدیم واجب تعییمی عنوان نداره که قصد و عنوان میکنن همین که یک واجبی رو گفت او نهار بیش واجب تعییدیم می‌خواد قصد واجبه رو کنه اراده واجبه در حضور این در حضور مقام بیان بشه درمیخوره به درد کسانی می‌خوره که دنبال بیان مراد جدی و تمام مرادند به قول مرحوم استادون اراده حکمی ما در اینجا اراده حکمی می‌خوایم اصلا مراد تمام مراد واقعیش این نیستم می‌خوایم دنبال این نیستیم ما دنبال این هستیم که جمیه که به ما این دو یا سه تا یا, یا چهار یا و باب و ما این چهار تا پنشتا لفظی که اوورده این معناش در عرف اینه این به لحاظ معنی تصوری به لحاظ هم وجوب اتیان آبه این وجوب آیا تحیمیست میگی با در مقام بیان باشه نظرش بوده به تعیین یا تخیر لیکن تعیین تحیم رو نگفت نه اینا رو میخوایی مقدمه همین که یک تحیمیتی رو بود قید تحیم اداز تحیم رو به کار همین خودش به نفسه کافی بله واجب نفسی یا غیری اون معامله زاده میخواد. از خصوصیت مورد میشه یعنی حساب دارد بخوایم یکی که ما موردش مواردی دارم بله، مثلا آیا این واجب واجب نفسی یا واجب غیری داره بله، این انصافت مثلا گفت که حلا تعلم آیا تعلم واجب نفسیس یا واجب غیری واجب نفسی یعنی اصلا برای انسان واجب احکامش یاد بگیره ناقص شده از مفهوم شهر انسانی کسی که احکام تکلیفیشه یعنی اصلا که مقلد هست یا مشهره احکام خودش رو نماز و روزه و احکام خودش رو بلد نباشه پس سرش نمی‌کنه واسه این سرش اینه که تعلق واجب نفسی گرفتن وقتی اخثار کرده بیاد واجب نفسی فاسخ بشه کسی که احکام شرعی خودش رو بلد نیست حتی به نحو تقلید اما آدم متددی نماز رو. اما احکامش بلد نیست از چه رنسالی نرمه شده به این چه پشترش میشونه واسه چرا این تعلام رو واجب نفسی گرفته این نقطه فرقیه چیه اما اگر تعلام واجب نفسی نباشه خیلی بوجه چیه مشکل انجام میده تعلام اگر وجوبش بشه. اگر شک کردین طلبان انتریزتون یا حلا اونچا باید انصافا یه مقداری بیشتر کار کرد غیری بودن و نفسی بودن به سهولت تعینی و تقدیری نیست باشن شد تعینی و تقدیری خیلی راحته همین که واجبی رو بر اون رو بود موجود تنگیر نیمیخواد قصد تعینی بکنه یا بکنه لازم نیست قصد تعیین. اما در اینجا میخواد این خلاصه و پس بنابراین روشن شد که مقدمات حکمت کجاها میخوایی و کجاها نمیخوایی و چه مبانی هست در اراده مقدمات حکمت در اونجه هایی که مدلول تطوریسی نمیخواییم در مدلول تصدیقی اگر مراد ما اگر در زنبال و مراد واقعی هستی دائرش اوسع میشه تا جایی که در مقام حجیت هستیم و انعراض زهور اونجا امقای دارش کمتر میشه چون ما دنبال ذورات عرفی هستیم همون ظورات کافی کافیست به دنبال کشف مراد واقعی و تمام مراد متکله نیست. این خلاصه بحثی که درباره مقدمات حکمت بود چه مواردی میخواد و چه مواردی نمیخواد؟ اینیو کفایی بزاری... اینیو کفایی هم هم نفسیه؟ بله تقریبا شبیه یک مقزارش فردا اینینو کف هم نقداری معومله انصافا اصلا میگه اهل کوچه کوچه رو تمیز کنید آید به نبرد عینی هر کدوم با دلش یه جایی داخلش رو بگیه تایید کنن یا نه اصلا یک تفاوت اوغلایی هست که مراد یک نفرم انجام بده از بقیه صادر انصافا عینی و به اصطلاح به اصطلاح عینی و کفایی نفسی و کفایی کفایی انصافا اون هم یه مقداری ابهام داره نفسی و غیلی هم افهان داره تعینی و تختیری نداره ما این همون نقطه ایست که ما کرا را کردیم ما در اصول یک کبرای کلی نداریم یکی یکی موارد و خصوصش بررسی بکنیم در وجوب تعینی تختیری یک کلی راحته اما نفسی و غیلی این راحتی نیست مثلا اینه که فرمزد که شما من با مثال یک قلبه یه سهم بریم و اندازه چهار دنبال آب می‌گردیم آیا این موجب نقصی داره یا غیری داره اگه نقص بشه هرکسی باید بولا نشه اما مثال دیگر که مثلا در قص در یکیش داره انگشتارش گذانن در بیاد کی رو تحویل شه چیزی گون جا بجاش بکنه خب اگر شک کردیم آیا نقصی؟ صادق فریدون رحمت الله علیه نقصی گرفت. البته تو قص ولی این کارو خونده وضو اینو مشهور علمای ما غیریه. پس نه مهم آبر رسیدن الله. یعنی مشی در وضو یکی باشه. حالا نماز چجوری ننند؟ یکی توش مثل در انگشتره که توش تکان دادنشه تو وضو یکی تو صد لکشه هم همینطور فقط بوده گفت تو وضو اون کارو باید بکنیم تو وضو اون کار. یعنی ایشون نفسی فهمیده درسته دیگه که انصافا فهم واضی در اینجا خیلی و مرا آب آ داره یعنی در حوضه یک کار معین بکنه در حوضه کار معین دیگری بکنه و تصادفاً یه بحث از علی مجرفان داریم که ایشون میگه سأل جواب از علی امام قائله اشکال نداره اما صدور ظاهری رو قبول نکرده اون دو تا روایت دو تا روایت یکی در موضوعی یکی در وصلت یا واحد واحده حالا اگر کامپیوترات دارن بیان توی ابواب و وسایل اورده و اگر جلوشون هست یکی شلادم تحویل یکیش قلبه یقلبل خاطرن یا خاطر میشن تحویل خاطر من الان گیدم مساله رو بحثش کردم الان متن روایت رو هم این راجع به این قسمت مسئله انشاءالله اگر تمام شد خب بحث دیگری از مبادی تصوری مخلق و مونده و اون بحث دو سه مورد هست که آیان اصولی اصولیین متعرض شدن البته ارز کردیم در جور مسائل یک زیربنای لغوی مطرحه دو زیربنای عرف آم مطرحه سه زیربنای و تحلیل عرف خاص که عرف قانونی باشه اینها عبارتاً از به اصلاح اسم جنس حلال جنس مفرد محلای های و مفرد نکره در موقع نکره هم باز بحثی دارم مفرد نکره این چهار لحظه که آیا اینها جزوه مفرد هستن یا مطلق نیستن بله چون من بلا کسی نگاه که اصلی کانکری که ها نه اطلاع سب ابواب بلاست که می‌شود بل اون علی ابن علی میگه ابیلیام که اصلا فرقی نمی کنه قبل از ذات تعلیم باشه تو همون باب قبل از ذات تعلیم باشه کافی بله کافیه تذکر فنی هم داره بخونی و میگه اگر در وصول انسان به وصول یذراکیه دی باب و وسایل وسایل واری؟ نه کافی نه خود وسایل بیار نه کافی نه خود وسایل راوی شده تو ذهن نیست. آه این در بس, بس و حذف هم مکانه و خل و وضو چیره رو بعد به شرط میشه این صدوق همین فتواده گفته باید تقاض اونجور باشه یعنی عقد جلو بکنه حذف هم مکانه جلو بیاره اما در وضو به شرط باشه چیره رو میدونم ملتفه تن همین شاید شاید کام کارو مشکل کرده صدور گفته بجه یکی در شاید شاید داره بگیریم فت فت باقیدیم در وضوع همونطوری که گفت. گفت یکی حبل داره جلو بیار یکی داره تودی رو به چرکونه ایشون هم فت همینجور داره حالا تهم و عرفینه که فردم ایشون در درامنده نفسی و غیر نفسی گرسه. چرا همین کوه شما اون شاید شاید تا شاید شده گوائل نث ما اول میگه شایع شده از اون بره این روایتی نه احسانو که شما هم شوره صدوق حبیب شوره طول می‌ذاره صدوق هم میره میگه مواد کی یک روایت واحد دو تا آمده فرق میکنه مثل شاید ایشون دیگه فرق میکنه صدوق میگه حالا که دو تا اومده وقت روایت جعفر میگه فرقی اون رو در این جفر میگه تحبیل یا تدویر میگه فرمون نرزم حالا بارتون بحثی باشه. حاسب مخواد نمونه خدمت نرزیم با که انصاف رضیه ارتکاز و عرفی با این متاعد نیست. با نفسیت متاعد نیست. ارتکاز و عرفی متاعد با وصول حسول آبه آب باید برسته مخواد تحبیل باشه مخواد طبیع باشه ارتکازات و عرفی ما اینجا این رو میده اصلا باشه به این چهار مورد که مثال زده شده که آیا از اسم جنس هستن به بخش از جز مطلق هستن یا نه من مقدار ارز کنم اینجا بحثای لعوی عدلی مفرح گردن مثلا اینجور مفرح که در زبان عرب اسم جنس به گونه الفلام و تنویل استعمال نمیشه مثلا کتاب به گونه الفلام بکن ولی ازا چطور چون اسم جنس بعد میگه محلی بلام، بعد میگه علم جنس بعد میگه منکر به سلام منظر به اسطلاح تند، تندین مفرد منظر شما نمیتونیم به اسطلاح در زبان عرب اسم جنس نداریم که بدون یا علف لام باشه یا بدون نون باشه دیگه این آزاد اینجوری شده عرض شد که سابرن انسان ها رو این رو باید قبول بکنیم که لغت چه لغت عرب لغت عرب در اثر گذشت زمان بر اثر بعضی از خصوصیات اجتماعی فرهننگی و خصص دیگری که پزار میشه یک تغییراتی درش پیدا میشه اینطور نیست که راست در لغت عرب صمی در لغت عرب جاهلی ما اسم جنس بدون لا یا تنیل نداریم اما بعدها که مخصوصاً علوم و فنوم از این تر غوپز، این ها وارد دنیای عرب شد همون الفاظ رو بدون الافلام و تنگیم به کار می برن مثلا کنید همین لفت فرسید مثلا لفت در کتاب هایی مثل, مثل قانون مثل به اصطلاح قانون شغل رئیس یا کتاب ذکر رازی، مثلا مثلا له اصلا نه الافلام توش می زنن نه تنگیم این بعدها شد اما در متن صلب لغت عربی اصلی در جاهلی و در تا زمان نزول آیات مبارکه بدون هل یا بدون تنبیل تلی کمه یا بکار نداشته اما معلوم نیست در زمان ائمه ما اینطور باشه این معلوم نیست ولی ازا بعضی از الفاظ الان بدون هل افلامه و تحجیب هم با مثلا با باید باشه باید ظاهره بر اثر پیشرفت اجتماعی اینطور میشه میتونن اون محوم رو بدون اضافه بدون پسند یا پیشوند پیشوندش اعله پسندش هم نونه چون در زبان عربی هم از همین قاعده پسند و پیشوند استفاده میشه بدون پیشرن و پسند کار بردن این مشکلی نداره در زمانهای بعد که الا ماشاءالله در کتب لغت الا ماشاءالله اما در زمانه من به نظر ما این مطلب وجود داشته که اسم جنس رو بدون ال و بدون نون تنوین به کار برده دشت. این یکی مطلب دیگری که هست این است که خود اسم جنس با قطع نظر از عل انصافا همینطوره در زبان عرب وزن نشده فارس هم همینطوره زارم ما فرم فارسی فارس و عربی نمیدونیم نشده, نشده برای ماهیت یه قیدی ولو قید سریان و ظاهرا ظاهران که گفتن همون ماهیت در نظر میگیر راست الان هم چیزهای جدیدی بشر اختراع میکنه مثل ماشین حالا ماشین ساده نه وقتی میگه بیا به زبان فارسی ما خودرو وقتی میگه یه چیزی درست کردی که خودش راه میره نیاز به ادم نداره اون بکشه خاطر نمیخواد اون بکشه خودش راه میره کسی از عقل نمیخواد هلش بده خودش راه میره چیزی میذارم خودرو یا ماشین یعنی این ذات رو این خصلت رو این خصوصیت رو یک موجودی که دارای این شکل نیست. از وقتی یک میوازارش به قول رهیدیا ذاتیاتشه راست این داشتن چرخ و راه و اینی که حرکتی میگه ذاتیاتشه یه اگه نذاشته باشه که خودرو بشه میگن اصلا این چرخ نذاشته باشه اما حالا اتوباص داشته اتاق اتوارنش داشته باشه حالا صندلی داشته باشه صندلی نباشه اینا خیلی به قول معروف ذاتیه یه مفهومه رو انسان نگاه میکنه خصوصیاتش رو در نظر میگیره مثلا در میان صاب در ایران ما آپارتمان داریم حالا مثلا شوگیرم یک مجموعه ساختمانی رو به یک شکل معین در نظر میگرس میشه سویت میسه در این سویتالی از خارج میاره یا خودش میگذاره انصاف قضیه خود اون ذات به اصطلاح معنا در نظر می گرفته میشه یک خصوصیاتی با عنوان اصطلاح قدیمی ها ذاتی و ذاتیاتش ولو در همون حدود تسمیه و نامگذاری در نظر گرفته میشه یه در خصوصیات هم دیگه میشه والاسه این جزء زیر زمینه ممکنه مثلا با آجر نما باشه دیوارش درست کرد بعضی جا ممکنه با گچ باشه بعضی جا که با سیمان باشه بعضی جا هم این میشه نه خیلی تاثیر نمی کنه که دیوارش از چی باشه اما من هیتر مجموعه زیر زمین یک مفهوم عرفی داره زیر زمین یک مفهوم اون مجموعه رو در نظر میگیره که ضمن مجموعه میشه زیر زمین میذاره این در این ما هیچ شیوع باشه، شیوع نباشه، به شرطی باشه، به شرطی باشه که لاغوسه در نظر نمیگیریم انصافا. انصافش در این نامگذاری و در این تقسیمیه هیچ از نمیاد. یا به تقسیمی که از کردن م금을 صلاحاتی رو که م금을 شانس به کار پنج 5 تا استاد حمید جان تو صاحبش همون تقسیمی که معلوم و از اون که لاوجه شرط و لاوجه رسمی و به شرط و شرطه ظاهرا مطلق همون لاوجه شرط یعنی هیچ عینیتی میگن به قدما نسبت داده شده لاوجه شرط رسمیش ولی میغال راسه دورش اون کلمه شایعه فی جنسه مگر اوناضشون بشه به هر حال انصاف قضیه ما در اسم جنسی در لغت عربش در لغت فارسی ما همون عنوان بدی ذاتو در نظر ذاتن به این معنا به بکثر نظر امزات ها یعنی به عبارات دیگر میگیم یک چیزهایی در نظر دخیل درصد به عنوان ما یه چیزهایی دخیل نیستن حالا مثلا صندلی داشته باشین صندلی خیلی شیک باشه نباشه بو زمینش پیش نشه بالاخره خردرو داره یک مفهوم عرفی در این مفهوم عرفی سرایان و شمول و علل بدل و به نظر عموم سرایانی و افلال. این حرفایی که در نظر گرفته نمیشه انصافا این مطلبی که گفته شده درست. و مطلب صحیحی نسبت به علم جنس هم چون مرحوم اصطان نهار کدن کفایی هم کدن درسته انصافش این در زبان عرب این خصوصیت هست گاه عرب برای اینکه یک معنا رو در ذهن حضور بده خود به بکنید نه اینکه مغیده به وجود ذهنی بکنه دو راق داره عرب این هم در حقیقت برای بسا تأیون معنا نه معهودیت معنا این یک چیز تعیون چیز دیگری برای تعین ما بازم تعیون یک چیز تغییر چیز دیگری نه اینکه معنا رو مغایر به وجود ذهنی بکنه ما وجود ذهنی هم نمیشه تغییر وجود ذهنی هم نیست تعبد هم نیست اعلم نیست یک نوع تعینه تشخص هم نیست چون تشخص مساوات با وجود خارجی یک نوع تعین ذهنی این تعییون ذهنی رو در زبان عرب دو جور می رسونن. یک دفعه با وضعه یک کلمه مثل سواله یک دفعه با یک پیش مثل اف سعلت. خود سعلت برای ذاته. اف سعلت این الاخلام برای یک نوع تعییون زهنی برای تشکل حضوره در ذهن، اف سعلت برای احضار اون معنی. اف سعلت. یعنی حتی میگه برای احضاره. گاه یه قد و اون رو با خود لحظه انجام میده دیگه نیاز به پیشفن نداره اونجا یه سواله که اسمش علم جنسه مثلا اونجا هم که من علام میدونم به خیاس زبان فارسی از دوان فارسی نداری این اصلاح جنس اسم جنس و علم جنس این در لغت عرب هم و به اصطلاح دیگه فرقش با از سعلت فقط به جهت لحظیه یعنی عرب با سواله معامله کرده. نه معامله کرد بلکه معامله علم خصوص علم کرده عرضایی که به کاری باش معامله با با علم جنس لذا او گفته شده علم جنس لذا تقییش همچون که در مرمون استاد اختیار فرموده هست این شهر من استاد ندانم من جوریه گفتن من لغت وقته تر و فنیتر زدمتون عرض کردم. اون چه که در هست، یک نوع علم لحظی است. اما نکرست باعثون جنس هیچ فهم نمی اما یک نوع علم لحظیست آثار محرطه مثل پس همزهت ها داره اما علامت تنیزه اما خب تنیز لحظیست هیچ آثار به اسمان محننست ترش وجود نداره پس بنابراین گاهی در زبان عرب عهد یعنی یک معنای محبودی رو اراده میکنه گاهی وقت در زبان عرب تقیید فاسم همینطوره یعنی اون معنا مقیدن به وجود ذهنی مثلا یعنی انسانونو اون تقییده تق... گایی وقت تاییونه نه عهده نه تقییده تاییون یعنی برای احضار در ذهن تفهیم ذهن برای تفهیم حضور در ذهن نه مقیده و نه معهوده آره این تصور بکنید مالای هم نه معهوده و نه مقیده این در زبان عرب دو جوره یه لفه باید پیشوند یه از سهلت این چه یه با پیشفن نیست خود لفظه میگه اسامه یعنی شیره نه الاسد سواله نیست علم که اسمش علم جنس راجب نکرم نه مختصر راجب الاسلام هم که برسر اسم جنس در میان این هم انصافاً در زبان عرب کاربردهای متحدث دارید مرحوم سالکفایی شرد در این تا که من بیدارم شاز بدنش نفیس بید تمام کاربردهای تمام کاروردهای زینک داری زینکه علاقه اصل ک بر تمام اسماء معرفه در نمیاد در تمام اعلان در نمیاد. دی گفته سماعیه درم زابز در شده. مثلا ال محمد نمیگن، ال علی نمیگن، ال فاطمه نمیگن. اما ال حسن میگن، ال حسین میگن. بر سر حسن و حسن در میاد، بر سر مثلا النجر میگن اما ال بغداد نمیگن. اینطوری نیست که هر اسم علمی ال اعلام در بیاد. این اطلاقاً تاب که خودش موجود دینار در و دینار به ادعا کرد ان در انسان خود این انسان همه جا زیادی و زینته برای زینت کلامه و اون خصوصیات احمد و مرد و این جور چیزا از قرار نمی‌پرن میشه. دیگر اینکه حالا ایشون نوشته چون ایشون در بحث استصحاب راتنودی شک میگه لام بحث برای ام در استصحاب میگه گفت. اینجا تو بحث مطلق موقیت اینجور گفته این حرف ایشون هم حالا دیگه احترام ایشون. به نظر بنده قابل ذک نیست که رد اصلاً حرفش باشه. اسیاری اساس این مطالب استاد علامه مشهد را نمیبیند یرد ده ال الهیه سیار هذه به اساس قیمت تر نداره و صحیح همون که در کتب لغت مثل این ها در کتب نه و در کتب ادب معانی متعدد داره اگر که برای تعین ذهنی باشه مطلقه اگر برای ماهوودیت مشو نذیکه ان که نا اصل عاصف قرون رسول این از رسول هم رسول معینه که از از اگر جای اهده که طبق شواهد خودشه اما اگر عهد جنس باشه با تعیین جنسی فردی نداره حکم حکم مطلق نکر هم چون نون نگری مناوله چون نون در لغت عربی برای تمکن از طرف برای وحدت ایگاهی برای جهات مختلفی اگر معانی خاص خودشو نداشته باشه این سافر اون هم جزء اسم جنس و جزء به اسلام مطلقات نیست میان چون این ها رو مردم های پی بی‌کشاورزی دیگران آن مراجعه کنن من یک تیلی جامعه گفتم و یک نکات جدید گفتم که در کتابی هم موجود نیست به همین مرزشون